چکراغ شش بالاترین هوش، مکان پیشانین یا چشم سفام موضوع هوش. صفات مطلوب خرد بینش شهود خیال پردازی مبحث چکراغ ششم هوش است محصولی بی در انسان خردمند اینجاست که به صورت نمادین آگاهی سعادتمند تغییر ماهیت می و با جریان دائمی افکار، ادراکات و عقل و حوش خودش را به ذهن تبدیل می کند. در دنیا مدرن این عمل منبع بیپایانی از فناوری و پیشرفتهای علمی را پدید آوردند. اما همان قوای عقل به سوی خلاقیتی که قدرت ویرانگر اهریمنی دارد منحرف شده است. در پیدایش صداهای هستئی، صداهای بیوشیمیایی و روشهای پیچیده تر منتج به مرکهای دست جمعی عقل مسئول است که به نظر می هرگز از آنها فرار نمی کنین. هر صداه جدید برای کسانی که آن را طراحی و استفاده می کنند معقول به نظر می رسد. با این واقعیت ها به یکی از اساسی ترین اصول یوگا خیانت شده است تکامل به عبارت دیگر جریان تکامل آگاهی مسیری است که همه باید در آن باشند. اگر موفقیت با سعادت سنجیده می شود، چگونه جنبه های مخرب عقل می چیزی جز لغزش به عقب باشد؟ اقدامات کاملا منطقی بیش از ایجاد وحشت جنگ مدرن ویرانگر بود، استفاده از سوخت های فسیدی و موتور احتراق داخلی پیروزی های تکاملی بودند تا اینکه آسیب هایی که به محیط زیست وارد کردند به طرز غمگیزی آشکار شد. به منظور فعال کردن چاکرای ششم، هوش باید حاوی روش های ظریفتر زن از طریق شهود، بینش و تخیل باشد. یوگا به آنها اهمیت بیشتری میدهد تا اقلانیت. زیرا ذهن باید به شما بگوید که یک ایده کاملا منطقی چه زمانی لایه زیرین مخرب دارد. خیلی راحت می توانیم این را به سطح فردی مرتبط کنیم. هر کسی که در یک رابطه شریکش را اشتباه انتخاب کرده باشد معمولا گله می کند ای کاش از قبل می توانستم او را بشناسم یا وقتی ناگهان به من گفت قصد دارد به رابطه پایان بدهد قافل گیر شدم. داشتن درک شهودی از رابطه از همان ابتدا به شما کمک می کند و زمانی که به دارما متصل هستید نیازی به فکر کردن درباره مسائل شخصی از جمله روابط نیست. هوش خلاق ویژگی دارد که از خلال خردی که در چاکرای ششم متمرکز است شما را از درون راهنمایی نمائی می کند. اگر این چاکرا را فعال کنید چشم سوم را باز کرده اید. باور مشترکی وجود دارد که شهود واقعی است اما در یوگا مسئله باور نیست. آنچه مهم است این است که آیا می توانید به جرقه های شهود، الهامات و حس ششم خود اعتماد کنید؟ همه ی تکانه های ذهنی ظریفی که افراد کاملا منطقی به آنها تردید دارند. برخی از افراد به اندازه کافی به شهود خود اعتماد می کنند که گیرنده های شهودی خود را آماده باش نگه می و به دنبال نشانه هایی هستند که بیشتر مردم نسبت به آن حساس نیستند. با این حال به طور کلی تکیه بر قدرت های زریف زهن به شدت کاهش یافته است، مردم مدرن از فرهنگ های باستانی که به الهامات اعتقاد داشتند، به رؤیاه به عنوان مکاشفه می یا حضور الهی را که از قدیسان و آثار مقدس نشعت می احساس می کردند، بسیار فاصله دارند تمدن های بزرگ از طریق قدرت این جهانبینی پدیدار شدند که انسان را با دنیای بی زمان پیوند می داد. بعدی که راه بازگشت این نیست که جهانبینی مدرن خود را رها کنیم بلکه باید واقعیت را گسترش دهیم اگر عقل را مهمترین راهنمای زندگی می‌دانید همانطور که احتمالا یک دانشمند این کار را می‌کند قدرت عقلانیت شما واقعی است و رشد خواهد کرد اگر باور دارید که شهود به اندازه عقل مهم است برای شما واقعی خواهد بود و رشد خواهد کرد کمال مطلوب این است که هر دو جنبرا در زندگی خواد داشته باشید. بر اساس علوم اعصاب همانا خواه سمت راست خواه چپ مغز در ما غالب است که به عنوان افراد چپ مغز که منطقی، گرهگشا و کارساز و عقلانی هستند و افراد راست مغز که خلاق، شهودی و هنری هستند رواش دارد. اما هر دونیم کار مغز مکمل و هماهنگ با یکدیگر هستند. یوگا، روی کردی تمام مغزی یا به عبارت دقیق تر روی کرده تمام ذهنیست شهود با خاموش کردن یا نادیده گرفتن اقلانیت به دست نمی آید بلکه با پی بردن به سطح ذریفتر از ذهن به دست می آید به هر حال یک ریاضیدان می تواند بسیار خلاق باشد یکی از بالاترین جایگاه ها در علوم ریاضیات پیشرفته است که یک ریاضیدان به راهکاری میرسد که هیچ که از قبل از او به آن نرسیده است. شما همچنین میتوانید ذهنی موسیقایی داشته باشید. مانند ذهن یوهان سباستین باخ که برای سازماندهی نتا در آرتیکولاسیون پیچیده معروف به کانچپوان بی نظیر بود. نظرسنجی تمام ذهنی حوش خلاغ تمام ذهن را پرورش می دهد. اما با گذشت زمان همه ما خسلتهای خود را توسعه می دهیم که به یک چارچوب فکری تبدیل می شود. ما خودمان را منطقی و معقول می پنداریم. در این صورت هنرمندان و تیبهای خلاق تا اندازهی با ما متفاوت به نظر می رسند که باعث می شود نسبت به آنها سوئه زن داشته باشیم. چارچوب فکری دیگر با جهدگیری کاملا شهودی ممکن است شما را چنان تا عبرها بالا ببرد که هیچ ای برای افراد چپ مغز نداشته باشید. اما چارچوب فکری به ندرت به این اندازه یک سویه است. برای اینکه متوجه شوید کدام سو را نسبت به سوی دیگر ترجیح می دهید به هر ای که در ادامه می به خودتان یک امتیاز بدهید. ذهن منطقی اقلانی من با امور به روش علمی برخورد می من فضای کارم را مرتب و منظم نگه میدارم. من مقالاتی در خصوص علم، فناوری، پزشکی یا امور مالی میخوانم. من دست به آچار هستم. من به راحتی میتوانم به یک دانش آموز ریاضی تدریس کنم. من فیزیک، شیمی یا ریاضی را در کالج انتخاب کردم. من به پازل و بازی های فکری علاقه دارم. بر این باورم علم بهترین رو کرد برای حل مشکلات دشوار است. من معتقدم که برای حل بحران آب و هوا به فناوری نیاز است. به عقیده من دانشمندان روزی راانه هوشمند برابر با هوش انسان خواهند ساخت. من گمان می کنم کلید آگاهی در مغز نهفته است. در رابطه شخصیم من منطقی تر هستم. به خودتان از سفر تا دوازده چه امتیازی می دهی؟ ذهن شهودی خلاغ من خودم را خلاق می پندارم. من قریزه خوبی در ارتباط با درک تینت انسانها دارم. من تمایل دارم به جای پیروی از یک دستور العمل دستور العملهای خود را ابداع کنم. من میتوانم نقاشی بکشم، به یا یک ساز موسیقی بنوازم. به محض اینکه وارد فضایی می شوم، می حال و هوای آن فضا را احساس کنم. من به سرعت متوجه خلق و خوی افراد دیگر می شوم. من کاملا مخالف خشونت هستم. من خرید های یهویی انجام می دهم و هیچ وقت پشیمان نمی شوم. من والدینی مهربان هستم، من مقالاتی در حوزه هنر مطالعه می کنم، من از شعر یا متون مقدس الهام گرفتم، کودک درونم فعال است. حالا به خود از سفر تا دوازده چه امتیازی می دهید؟ عرضیابی امتیاز اگر امتیاز شما به شدت به سمت منطقی اقلانی یا شهودی خلاغ منحرف شد، چارچوب فکری شما قوی است. هنگامی که افراد در یک چارچوب فکری قرار می تمایل لرند به آن پای بند باشند و رفتار آنها بر گرفته از ذهنیتشان است. حد اکثر امتیاز برای هر بخش دوازده است و اگر نزدیک به حد اکثر باشید، با چارچوب فکری خود خوب گرفته اید. این جهان بینی شما برای تمام اهداف کاربردی است. اگر امتیاز شما در بخش دیگر چهار یا کمتر است، امکان دارد تمایل به نادیده گرفتن یا ناسازگاری با چارچوب فکری متفاوت با خود داشته باشید. اگر امتیاز شما برای هر دو بخش نسبتاً متعادل است، کاملاً به چارچوب فکری خود وابسته نیستید. فضایی را برای منطق، نظم و رویه گشوده اید، اما در عین حال فضایی برای قاطعیت، خلاقیت و الهام نیست می گذارید. اگر در هر دو بخش نمره نه یا بالاتر کسب کردید، شما واقعا انسان نادری هستید. به جای تسبیت بر یک چارچوب فکری، بهترین اقلانیت و شهود را با هم ترکیب می کنید. در یوگا، شما با جریان هوش خلاق که هر دو طرف ذهن را پرورش می‌دهد بسیار همسو هستید. اگر در هر دو بخش نمره 5 یا کمتر کسب کردید یا در برابر پرسیدن این سوالات مقاومت کرده اید یا برای پاسخ دادن به آنها عجله داشته اید. نادیده گرفتن چارچوب فکری دلبستگی به چارچوب فکری میتواند یک مضیعت بزرگ باشد. اگر چارچوب فکری شما منطقی اقلانی باشد، تمرکز دقیقی روی علم و فناوری ایجاد میکند. شما را روشمند و سازماندهی میکند و میتواند منجر به یک حرفه رضایت بخش به عنوان حسابدار، تکنیسیان، مدیر و بسیاری از مشاغل دیگر شود که مردم به آنها میگویند چپ مغز، اگر به شدت شهودی خلاق هستید در هنر یا هر کوشش خلاقانه ای مانند آشپزی و دکوراسیون شکوفا خواهید شد و با سبک زندگی که به شما آزادی بیان پیروی از شهود خود و پیوند عاطفی با دیگران را می‌دهد احساس رضایت خواهید کرد با این حال یوگا در پی گریز از چارچوب فکری است چارچوب فکری قوی یک طرفه است اما موضوع این نیست. مسئله باز بودن در برابر جریان هوش خلاق است که با ذهنی باز منعتف نچسبیده به باورهای ثابت و دائما قادر به نونبار شدن از طریق زیبایی، عشق، کنشکاوی، کشف و بینش مشخص می شود. به عبارت دیگر وضعیت آگاهی شما بسیار مهمتر از هر چارچوب فکری است. مهم نیست تا چه اندازه آن چارچوب فکری ممکن است موفق باشد. یوگا می آموزد که آگاهی چیزی را از دست نمی دهد. عقل با شهود کاسته نمی شود. شهود با عقل تضعیف نمی شود. هدف شما باید روی کردی تمام ذهنی باشد که درستترین و بهترین تعریف هوش است. برای گریز از چارچوب فکری برخی مراحل بعد از شنیدن این کتاب برای شما آشنا خواهد بود. در آگاهی محض ساکن شوید. هر زمان که مسترب هستید یا حواستان پرت می شود زمانی را برای تمرکز خود اختصاص دهید. رفتارهایی را که برای موفقیت کارساز هستند چگونه مفهوم پول را به درستی دریابیم به رفتارهایی که کارساز نیستند چگونه مفهوم پول را اشتباه متوجه می شویم ترجیح دهید اما این مراحل به تنهایی به شما این امکان را نمی دهد که ارزش گریز از چارچوب فکری خود را که باید اول از همه باشد درک کنید قدرت قایی ذهن این است که به تجربه خام معنا می بخشد. برای مثال به رنگ قرمز فکر کنید؟ آیا معنایی دارد؟ به خودی خود خیر، زیرا قرمز فقط یک طول موج نور است که ارتعاش خاصی در سلول های شبکیه در پشت چشم ایجاد می کند. ولی هنگامی که ذهن جادوی خود را پیاده می کند، رنگ قرمز به نمادی برای انواع چیزها تبدیل می شود. اشتیاق، خشم، خون، خطر، پیامی برای متوقف کردن خود روی خود در چراغ راهنما یا علامت ایست. خون جره چشامو گرفته به این معنی است که شما بسیار خشمگین هستید. اما ورنتاین با قلب قرمز نشانه اشق است و در نمادگرایی کاتولیک رومی قلب خونین ایسا نشاندهنده شفقت و در عین حال رنجی بزرگ است. به همین ترتیب تمام داده های خام زندگی هر چیزی که میبینید، میشنوید، لمس میکنید، میچشید و میبویید معنی دارد. زیرا ذهن شما به آن معنا میبخشد، با معنا دادن به یک تجربه خام به طور ناخداگاه به آن ارزش می دهید. به عنوان مثال می که آیا اتومبیل قرمز می خرید یا لباس قرمز می پوشید. با ارزش دادن به تجربیات خود در طول زندگی چارچوب فکری خود را توسعه داده اید. سالها و هزاران تجربه جداگان طول کشیده است تا چارچوب فکری خود را پدید آورید و همه به او دوران کودکی باز می کردندند. تغییر یک چارچوب فکری ثابت بسیار دشوار است. به خصوص اگر تجارب عاطفی روانی قوی داشته باشید. این درس اخیرا به من ثابت شد. دوست یکی از دوستانم که در فرانسه زندگی می کند درباره ژان صحبت کرد. جان معلمی در هومه پاریس است که بسیار باهوش و توان است. او لیبرال و روشانف به نظر می رسد اما پیگیر اخبار مسلمانان است به ویژه کسانی که به فرانسه مهاجرت کرده اند. چون با اینکه ادعا میکرداعصبح ندارد اما تجربه شخصی خوبی درباره مسلمانان نداشت. پس از دریافت چند ایمیل خشمگین از وی درباره مسلمانان، تا جایی که می توانستم با او مودبانه صحبت کردم. چه سال پیش، زمانی که جان معلم جوانی در دوره متوسطه فرانسه بود اتفاقی افتاد. دختر مسلمانی با روسری به کلاس آمد. جان با دیدن نگاه هایی که دختر از سایر دانش آموزان می او را کنار کشید و با مبولترین لحن به او گفت که بهتر است در مدرسه روسری سرش نکند. دختر بدون جواب سیری محکمی به صورت ژان زد و گریخت. جان هرگز این حادثه را فراموش نکرد و تا به امروز همه مسلمانان را مسئول آن می داند. در حالی که برخی از مردم می این واقعه را امری بیعدبانه و نخوشایند ترقی کنند، اقدام یک نفر که توصیه خیرخواهانه ژان را اشتباه گرفته است، جان، آن را اتفاقی بسیار امیغتر و هم موزیانه این بخشی دائمی از چارچوب فکری او نسبت به مسلمانان به طور کلی شده بود. با این حال، چارچوب فکری محصول تجربیاتی است که همه آنها آسیبزان نیستند. ما عمدتاً از میزان افزایش آنها بی هستیم. چارچوب فکری بسیار شبیه یک صخره مرجانی است، که با تجمع پولیپ مرجانی نرم در طول زمان ایجاد می شود. نمی توانید چنین ساخت و ساز عظیمی را یک شبه تغییر دهید. خوشبختانه مجبور نیستید. کاری که باید انجام دهید بسیار ساده است. چارچوب فکری خود را به طور کلی نادیده بگیرید. فردی بدگمان ممکن است بگوید، گفتنش آسان تر از انجام دادنش است و اگر ما زندانی چارچوب فکری خود بودیم حق داشت. اما مجبور نیستیم. مهم نیست که چقدر مکانیکی به همان تجربیاتی که بارها و بارها تکرار می شوند پاسخ می دهید. ذهن شما ماشین نیست. انگام استفاده از رایانه رومیزی یا تلفن هوشمند خود یک خط مستقیم بین ورودی و خروجی وجود دارد. آب و هوای امروز را از سیری بپرسید. پاسخی که دریافت می کنید در آب و هوا خواهد بود. با این حال از شخصی بخواهید که آب و هوا را به شما بگوید. هر پاسخی ممکنه است. از جمله نمی دانم. خودت پیدا کن. هیچ کس به آب و هوا اهمیت نمی دهد؟ مرا تنها بگذار. برو و راحتم بگذار. انگامی که با شخص دیگری صحبت می کنید، هیچ تصمینی وجود ندارد که پاسخی را دریافت کنید که در پیان هستید. رایانه ها بر اساس منطق طراحی شدند. شما برای پذیرش طیف وسیعی از تجربیات خلق شده اید و این تجربیات را در کانالی بسته یا باز دریافت می کنید. این بخشی از تنظیمات نیست که بنا باشد با بیم تعصب یا ذهن بسته پاسخ دهید اینها همه بخش های خودساخته ایگو هستند که در وضعیت سیانت از ایگو قرار دارند با پس زدن هر اتفاقی که متفاوت یا غیر منتظره است ایگو دیوارهای میسازد که کاملا جلی هستند در جرفترین سطح آگاهی هنوز کاملا از همه چیزهایی که برای شما روخ میدهد آگاه هستید. خرد از غذا این گونه شد که آگاهی شهرت بدی پیدا کرد. آنچه نمیدانم نمیتواند به من صدمه بزند نادرست است. ل سعادت است دقیقا تعریف اشتباهی از سعادت ارائه می دهد با این حال بسیاری از مردم سعی می کنند تا حد ممکن درباره تهدیدات دریافتی کمتر بدانند و در این معامله آگاهی خود را از زندگی از دست می دهند سرنوشت آنها این است که بیشتر اوقات اوقاتناشیار و به آگاهی بیشتر بدگمان باشند زیرا تصور می کنند دانستن بیش از حد عذابابر است که در اصل انکار هوش خلاق است. این انتخاب شخصی شما است که هرانچرا که می توانید در باره یک وضعیت درمانی یا جراحی پیش رو یاد بگیرید، اما موضوع این نیست. چاکرای ششام مربوط به خرد است که ساحتی از آگاهی است، نه مجموعه ای از حقایق و اطلاعات، در باگاباد گیتا لارد کرشنا اعلام می کند من میدان هستم و کسی که از میدان آگاه هست کلمه میدان سه معنی دارد اول میدان فعالیت است که در این نمونه با میدان جنگ نشان داده می شود زیرا گیتا در آستانه نبرد واقع شد کسی که از میدان آگاه است جنگجوعی مانند آرجنا خواهد بود که در کسفت عراب سوارش به خطابه لرد کریشنا گوش می سپارد. میدان دوم جسم است و با ساکن شدن در جسم فیزیکی همه ما در دل ذت را تشربه می کنیم. اما میدان سوم مهم است. زیرا میدان آگاهی است. تعالیم لرد کریشنا که یوگا نابست این است که خرد فقط بر آن کسی آشکار می شود که از این میدان آگاه است. کسانی که فقط میدان فعالیت و حضور در جسم فیزیکی را تجربه کرده اند، دوچار تبه یا به عبارتی معدبانه گمراه شده اند. آنها زندگی را از روی سطح فعالیت بدنی و ذهنی قضاوت می کنند، در حالی که خرد از سرچشمه می آید، از این رو خطابه معروف افلاتون به مرشدش سقرات سردرگم کننده است. تنها چیزی که می این است که هیچ چیز نمیدانم؟ چرا یک فیلسوف معروف با خرد این را بیان کرده است؟ به نظر میرسد رسد ضد دانش است. در واقع نوع دانشی که سقرات با آن مخالفت می کرد دانش واهی بود، مخالفان فلسفی او سفستگرها به طبقه برتر مردان جوان در آتن تعلیم می دادند و آنچه که آنها منتقل میکردند، اگر آن را به اصطلاحات مدرن تجربه کنیم، این بود که خرد را میتوان از معلم به شاگرد منتقل کرد. آنچه سغرات آموزش داد، چناخت درونی شهودی بود. تنها چیزی که می این است که هیچ نمیدانم، به از آگاهی اشاره دارد که در آن چیزی برای دانستن وجود ندارد زیرا خرد در همه افراد ذاتی است اگر خود را با جریان هوش خلاق همسو کنید افکار موفقیت آمیز در شما پدیدار خواهند شد اما آنها محصولات سانویه هستند اولین و مهمترین وضعیت آگاهی شماست هرچه بیشتر بر یک چارچوب فکری تکیه کنید بیشتر از آگاهی درونی خود جدا خواهید شد این همان چیزی است که رومان نویس بزرگ انگلیسی دی اچ لارنس به آن پرداخته است تمام آن چه می دانیم هیچ هست ما صرفاً ثبتهای کاغذ باطله هستیم مگر اینکه با چیزی در تماس باشیم که به تمام دانسته های می خندهد اندیشمندی آگاه باش در هر زمینه ای موفقترین اندیشمندان در یک زمینه مشترک هستند. آنها صاحب نظر هستند و تم باورهای دست دوفام نمیشون. آنها بیش از حد تحت تاثیر نظرات دیگران نیستند. شرطی شدن دیرینه بر روند تفکر آنها تسلط ندارد چه اندازه از جانب خودت نظر می دهی؟ این یک سؤال است و ارزش آن را دارد که به خودتان پاسخ روشنی بدهید که می توانید با شرکت در آزمونی که در ادامه می انجام دهید آزمون آیا خودت رو فردی صاحب نظر می با انتخاب موافق یا مخالف به این پانزده سآل جواب بدید. اگه تردید دارید، به جای اونچه که در این لحظه احساس می کنید، به گذشته خودتون فکر کنید. 1 به طور کلی دوست دارم شاد باشم. موافق مخالف دو در تمام عمرم فقط به یک حزب سیاسی رعی دادم. سه دوست ندارم انگوش نما بشوم و مورد توجه قرار بگیرم. 4. من معتقدم که اگر نمیتوانیم مطلب خوبی درباره کسی بگویی اصلاً چیزی نگو. 5. من شخصیت راهبرگونه ندارم و نمیخواهم داشته باشم. 6. من آنقدر ها هم خاص نیستم. 7. من از نظر مردم آدم عجیبی نیستم. 8. جای بحث و جدل نظراتم را برای خودم نگه می دارم no. در زندگی من چیز زیادی برای الهام بخشی وجود ندارد ده فداکاری برای تیم مهم است گازده هیچ کس واقعا مرا یک الگو نمی داند 12. اهداف معقول بهتر از رویاهای های غیرواقعی هستند که هرگز محقق نمی شوند. سی. خانواده ما اغلب مسائل را یکسان میبیند. چهده. چالش های ذهنی دشوار مرا میتررساند. 15. من تخصصی ندارم. ارزیابی امتیاز شما. نظر خود را گفتن مخالف است. اگر ده بار یا بیشتر موافق را علامت زده اید به طور غیر عادی سازگار هستید اگر ده بار یا بیشتر مخالفم را علامت زده اید به طور غیر عادی ناسازگار هستید اینها قضاوت ارزشی نیست بلکه به باورها و فرضیات ناخداگاه در باره نحوه عمل کرده زندگی اشاره می کنند همه ما ترکیبی از سازگاری ها و ناسازگاری ها در درون خود داریم. بنابراین بیشتر نمرات بشید وگه نسبتاً مساوی بین موافق و مخالف تقسیم می شوند. ما گاهی طبق نظر یا تفکر خودمان هستیم اما گاهی هم رنگ جماعت می شویم. با این حال تا زمانی که برای انتباق نداشتن ارزش قائل نباشید نمی توانید واقعاً صاحب نظر باشید. برنامه ریزی درونی شما را از انجام این کار به روش های ذریف و نچندان ظریف باز می دارد. یک نفر ممکن است انتباق نداشتن را با کنشگری اجتماعی، اعتراض، خودرعی یا عجیب و غریب بودن مرتبط بداند. در حالی که شخص دیگری ممکن است انتباق نداشتن را با تفکر کاملا جدید نیوتان یا اینشتین مرتبط کند. زمانی که همرنگ جماعت شدن ایجاب کند که از اصالت بیش از حد به هراسید ارزشگزاری خود به عنوان یک فرد اسیل به تقلائی ذهنی تبدیل می شود ممکن است چیزی درباره باره خشخاش بلند شنیده باشید شرمسار کردن افراد به دلیل ارائه نظرات متمایز از جمعیت ممکن است منشای آن در قرن هفته منسوخ شده باشد کلامه خشخاش به معنای شخص یا چیزی چشمگیر و برجسته است که اغلب با احتمال تحقیر همراه می شود. آنچه واقعا اهمیت دارد این است که از چارچوب بندی همه چیز رها باشیم. در هر صورت محرک های ناخدگاه تحت کنترل هستند. مهم نیست که دیگری شما را تعیید یا رد کند، مهم این است که بدانید شما فردی اصیل هستید اگر به تفکر غیر ارادی تکیه کنید زندگی را ساده تر می کند شما پاسخها، نظرات، باورها و قضاوتهایی را از پیش آماده کرده اید اما زندگی پویاست مدام در حال تغییر است بگونه ای که دیگر مناسب پاسخهای آماده نیست ما ذهن خود را برنامه ریزی می کنیم و همچنین به نیروهای خارجی اجازه می دهیم ذهن ما را برایمان من برنامه ریزی کنند. هر دو فرایند همیشه مشغول کار هستند. قوی عامل برای خود برنامه ریزی ایگست. زندگی فردی حال محور خانواده من، شغل من، خاسته ها و نخاسته های من ساخته شده است. با این حال وقتی به آسمان خیره میشوید نمیگویید آسمان من، آبی من یا اقیانوس من. مهم نیست چقدر به آن نستیک هستید. تجربه جهانی و همگانی است، به شکلی ظریف ایگوی شما بسیار محدودتر از آن چیزی است که فکر می کنید. من وااشق مصومی نیست. پس آن یک دستور کار خودخواهانه نهفته است. با پیروی از دستور کار ایگا ممکن است به این صورت فکر کنید. من مهمتر از افراد دیگر هستم. چیزی که من می مهم است. من باید نفر اول باشم. آنچه اهمیت دارد برنده شدن است. بازنده بودن تحمل پذیر نیست. تا به قل نرسم راضی نمی شدم. رقابت داروینیست. فقط قوی ها زنده می مانند. آیا اینها افکار یک فرد بسیار رقابتی و موفق است که باید به مسابه یک الگو باشد یا افکار یک بیمار روانی آری از گناه است؟ این دو با خطی بسیار ظریف از هم جدا هستند. به همین دلیل است که روانشناسان اغلب اشاره می کنند که بسیاری از رهبران مشهور چقدر به آسیب شناسی روانی نزدیک هستند. زیزشناس و فیلسوف فرانسوی جان رستان اعلام کرد انسانی را بکش، تو یک قاتل هستی، میلیون ها انسان را بکش، تو یک فاتح هستی، همه آنها را بکش، تو یک عبرقهرمان هستی. هر یک از ما جعبهی نامرعی داریم جایی که همه عناصر ایگو را انباشته کرده ایم و بدون آسیب شناسی به آنجا می رویم تا افکاری برای تقویت من، خودم و مال من بیاوریم. دمی باز بیستید و در خصوص تفکر غیر ارادی تعمل کنید که محصول ایگو هست. ایگوی شما هر لحظه به جای شما فکر می کند وقتی که سعی می کنید افراد دیگر حتی غریبه ها را تحت تاثیر قرار دهید. اصرار دارید که حق با شما باشد. تا زمانی که جدل را برنده نشوید یا طرف مقابل تسلیم نشود، جدل را رهان نمی کنید. علاقه به چاپلوسی دارید. جویای تایید دیگران هستید. همیشه در یک جلسه صحبت می کنید، حتی زمانی که همه خسته هستند یا چیز زیادی برای گفتن ندارید. افراد نیازمند را نادیده می گیرید. در پی راه هایی برای رفتار سلطگر هستید. حال هوای برتری جویی دارید. نظر خود را مهمترین نظر در میان اطرافیانتان می دانید. به رغبا به عنوان دشمنان شخصی نگاه می کنید. تصور می کنید که بیشتر از شریک زندگیتان برای حفظ رابطه خود تلاش می کنید. از فرزندانتان می خواهید که از شما به خوبی یاد کنند. توجه، قدردانی و حتی رابطه جنسی خود را برای تنبیه شخص دیگر دریغ می کنید. هدف این لیست این نیست که شما نسبت به خودتان احساس بدی داشته باشید. بلکه نشان می که دستور کار ایگو چقدر فراگیر است و چگونه رفتار روزمره به روشهای کوچک و بزرگ از این دستور کار پیروی می کند. ایگو لزومن مقصر نیست. درک و شناخت قوی از خیش ارزشمند است و همه کودکان باید درک و شناخت از خیش را ضعیف یا قوی توسعه دهند تا از طریق زندگی هدایت شوند و مسیر خود را بیابند. خبت در این است که اجازه می دهید ایگوی شما به موجودیتی مجزا صدایی در سر که هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارید تبدیل شود افراد ایگو کاملا ساخته ذهن است آنها های خود برنامه ریزی ایگو هستند منبع اصلی دیگر تفکر غیر ارادی برنامه ریزی اجتماعی است جامعه دستور کار خاص خود را دارد یا بهتر است بگوییم مجموعه کامل از دستور کارها. وقتی به هر دستور کار اجتماعی رجوع می کنید، دیگران را در اولویت قرار می دهید. اما این از خودگذشتگی رد گم کردن است. تسلیم شدن به یک گروه یا قبیله در نگاه اول به اندازه کافی معصومانه به نظر می رسد و تفکر غیر ارادی حاصل از آن اغلب زندگی شما را آسان تر می کند. داشتن افکاری مانند گذینه هایی که در ادامه می شنوید و فروتنانه است. برای انجام هر کار مهمی نیاز به کار گروهی است و هیچ من مجزایی در تیم وجود ندارد. هرچه حمایت بیشتری داشته باشید، احتمال مبفقیت شما بیشتر است. همه ما باید زمانی که شرایط نامساعد می شود متحد شویم. هیچ چیز مهمتر از خانواده نیست. من تافته جدا جدابافته نیستم. سازگاری خیلی از مشکلات را حل می کند. جامعه بر مبنای قانون و نظم است. این افکار محصول شرطی شدن اجتماعی هستند که از اوان کودکی شروع می شود. از روز اولی که یکی از واردین به شما گفت چه کاری انجام دهید، با افرادی مواجه شده اید که از آنها اطاعت و تقلید می کنید و آنها را می ستایید، به آنها وفادارید و آنها را بهتر از خودتان می دانید. مشکل این است که همانند دستور کار ایگو پیروی کرکورانه از دستور کار اجتماعی، منجر به افراد و تفریت می شود لحظه ای درنگ کنید و در نظر بگیرید که آیا پیروی از برنامه اجتماعی شما را به شیوه هایی ناخاسته برنامه ریزی کرده است یا خیر؟ جامعه همیشه به جای شما فکر می کند وقتی که همرنگ جماعت هستید درگیر تفکر ما در مقابل آنها هستید می ترسید وضع موجود را به هم بزنید وقتی اطرافیان کار اشتباهی انجام می دهند، چشم پوشی می کنید. از روی وفاداری متاسبانه از یک رهبر سیاسی حمایت می کنید، هر چقدر هم که او واجد شرایط نباشد. در خفا معتقدید که رنگین پوستان در رتبه پایین هستند. نژاد، مذهب، حزب سیاسی و ملیت خود را در اولویت قرار می دهید. از اعضای خانواده در برابر پولیس محافظت می کنید حتی اگر می که آنها مقصر هستند. بی غید و شرط از هر جنگی که کشور شما وارد آن می شود پشتیبانی می کنید. موترزان را اقتشاشگر می دانید. از پلیس حمایت می کنید مهم نیست که چه موضوعی باشد. به صورت افراطی طرفدار تیم مورد علاقه هستید. برای شما دشوار است که حقیقت خود را بگویید. از سازمان ها به خاطر منافع فردی حمایت می کنید. با دگرگونی عوضا و شرایط تغییر جهت می دهید. از آنجایی که دستور کار اجتماعی شامل گروه بزرگی از مردم می شود، برخلاف دستور کار ایگو که فقط به یک نفر مربوط است، این افراد و تفریط می تواند به نتایج وحشتناکی منجر شود. بدترین جنگ ها حاصد میهن پرستی افراتی است. رفتار وحشتناک با اقلیت بر اساس تفکر ما در مقابل آنها است. جمعیتی که توسط دستور کار اجتماعی برنامه ریزی شده اند که کورکورانه از هیتلر، استالین یا ماهو پی کنند در اعماغ قلبشان آسودند که کار درست و اخلاقی را انجام می دهند. پیروان رهبران اختدارگرا پس از افشای ظلم و جور غیر رهبران نظر خود را تغییر نمیدهند. در هر صورت، هر چه رهبر افراتی تر و رو تر باشد، وفاداری یک پیرو به احتمال زیاد قوی تر می شود. البته رفتار افراد عادی عموماً در محدوده پذیرش اجتماعی است، اما ذهن برنامه ریزی شده همچنان یک ذهن برنامه ریزی شده است. بیشتر مردم نگران برنامه ذهن خود نیستند آنها بیشتر مستعد قرار گرفتن در دستور کار ایگو یا دستور کار اجتماعی هستند که مطابق با خلق و خوی آنها است یکی از این دستور کارها و نه هر دوی آنها کافی تا واکنش های بدون تامل افراد را کنترل کند به این مثال ها توجه کنید در فرودگاه لغو پرواز اعلام شده است. یک نفر گروه لاند می کند این اتفاق نباید برای من بیافتد. من قرار مهم می دارم که باید به آن برسم. فرد دیگری می گوید من هیچ کاری نمی کنم. آنها رسیدگی می کنند. یک مربی مهد کودک با مادری تماس میگیرد تا اطلاع دهد ده که فرزندش بچه های زیفتر را کتک میزند و آنها را به گریه می اندازد. یک مادر می گو بچه من اینطوری نیست اشتباه می کنید مادر دیگری می گوید خیلی متاسفم ما به این موضوع رسیدگی می کنید یک موقعیت ترفی در سازمان به وجود می آید یکی از همکاران می گوید من مستحق به این ترفیم هیچ کس جز من سلاحیت ندارد همکار دیگری می گوید من میتوانم با زودتر آمدن سر کار و بهتر کار کردن شانس خودم را افسایش بدهم در هر مثال، نفر اول در چارچوب ایگا و نفر دوم در چارچوب هنجارهای اجتماعی عمل می کند. یافتن حد وسط این دو چارچوب کار آسانی نیست، زیرا مفروضات پس هر چارچوب بسیار متفاوت است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم به سادگی یک چارچوب فکری را بدون سآل می پذیرند. زمانی که بین دونی روی رقیب فردی و اجتماعی قرار می نگرانی ایجاد می شود. نمایشنامه های شکسپیر مملو از چنین جدل است. رومعا جوریت را دوست دارد اما خانواده آنها از یکدیگر متنفرند. حملت می که در ایالت دانمارک چیزی خبیص وجود دارد اما با ناراحتی فریاد می زند. نفرین بر شومی سرنبشت، خداوند زایشم را برای درمان دوران در درنبشته آخرین کلمات جولیوس سزار در بستر مرگ تو هم برو توست یک دوست را متهم به نهایت بیوفائی و توت با دشمن می کند درسی که فراتر از قدم روی تراجدی در اینجا وجود دارد این است که تفکر غیر ارادی هرگز تفکر موفقی نیست محض که متوجه این موضوع شدید گامی مهم در جهت تفکر برای خود برداشته اید، اما باید خیلی بیشتر از هوش خلاق بهره ببریم. همین به تنهایی به شما امکان می دهدد در هر شراغتی اندیشمندی موفق باشید. مهمترین و اساسی ترین موبتی که هوش خلاق به شما عطا می کند خرد است. در واقع خرد هوش خلاق است. آناتومی خرد آسودانتیش پاسخ‌های انعطاف پذیر، ادراک روشن، تفکر بدون ابهام، تعصب نداشتن و انتظارات مثبت. اینجاست که هوش خلاق بسیار موثرتر از تفکر معمولی است. دمی درنگ کنید و تجربه خود را در کلاس ریاضی دبیرستان در نظر بگیرید. معلم درس روز را ارائه می دهد و بعد چه؟ برخی از دانش آموزان از ریاضی لذت می آن را به سرعت فرا می گیرند. در برابر چالش های جدید باز هستند و مطمئنند که نمره خوبی خواهند گرفت. سایر دانش آموزان از یادگیری درس احساس بیحسلگی یا گیرا نبودن و سردرگمی می کنند. تعداد کمی ممکن است دچار استراب شوند و این استراب را تا آخر عمر ادامه دهند. تفاوت بین موفقیت و شکست نمی تواند بازه تر باشد و با این حال نمی توانیم واکنش های خود را در بسیاری از تجربیات و برخوردهای دیگر برای خود توضیح دهیم. گاهی اوقات ما آزاد هستیم، گاهی اوقات نه. در شرایط مسلم و قطعی ما انتظارات خوشبینانه داریم، اما در موقعیتهای دیگر از شکست می ترسیم. کاملاً حق داریم که به این انبوه واکنش ها اعتماد نکنیم. آنها ناسازگار و اعتماد نپذیرند، با هر موقعیت منفی نداشتن اعتماد به نفس، سردرگمی و نداشتن اطمینان خود را تقویت میکنیم. تعصبات تایید می شوند و ذهن می میشود. با این حال قرن هاست که سنت هایی برای خردورزی وجود دارد که به ما نشان میدهد چگونه از هوش خلاق به طور کامل بهره ببریم. اصول راهنما محدود به زمان نیستند. در اینجا مهمترین این اصول آورده شده است. آگاهی محض تنها چیزی است که شما نیاز دارید. ذهن دارای سطحی از آگاهی است که در آن راه راهحلهایی برای هر مشکلی وجود دارد. بر مبنای سطح از راه حل عمل کنید. به هوش خلاق اعتماد کنید. این هوش در تمام جنبه های زندگی نفووس می کند. آگاهی م تجربه ای آغازین و درگاه است. با دسترسی ذهن خود به جریان هوش خلاق خود را با خرد همسو می کنید. خرد حقیقی، پویا و زنده است. با اعتماد به هوش خلاق ذهن خود را از هر چارچوب مبتنی بر ایگو یا شرطی شدن اجتماعی دور می کنید. تمام هدف یک درگاه این است که چیزی در سوی دیگر قرار دارد. در سیستم چاکرا، آن چه در سوی دیگر قرار دارد، استحاله بیشتر است. با گسترش معنای واقعی هوش در پرتو یوگا، در حیطه چاکرای ششام ساکن شده ایم. هر توجهی که به ذهن داشته باشید، این چاکرا را فعال می کند. اما اقدامات دیگری نیز وجود دارد که می برای پرورش آگاهی انجام دهیم که کلید واقعی هوش متعال، در تمام سوور مختلف آن است. فعال کردن چکرای پیشانی، چکررا چشبه سوام. این چکرا هر جنبه ای از ذهن را تقویت می کند به ویژ شهود، بینش و تخیل را، چند کار که می توانید به طور کلی برای هر چاک را انجام دهید، اینها هستند. در آگاهی محض ساکن شوید. هنگامی که متوجه شدید نیستید، چند دقیقه زمان بگذارید و خود را متمرکز کنید. بر منترای عام، مراقب کنید. بر فکر متمرکز من آگاهم یا من آگاهی هستم، مراقب کنید. سایر مراحل به طور خاص با هدف فعال کردن چکراغ پیشانی است. مهمترین نکته این است که آگاهی خود را از مشغولیت ذهنی به سطح خرد تغییر دهید. می توانید این کار را با توسع شهود خود انجام دهید زیرا خرد دانش شهودی است. شهود توانایی دیدن چیزی است که چشمان قادر به دیدن آن نیستند، میتوان آن را به عنوان وقوف مستقیم بدون معلومات تجربه کرد شهود میتواند بینش و جرقه های ناگهانی قطعیت باشد تمرین شماره یک وقوف مستقیم شهود در خالصترین گونه خود دانشی است که شما مستقیمن به دست می آورید بدون اینکه نیاز به استدلال داشته باشید چشمان خود را ببندید و بپرسید که یک گم شده مشخص کجاست. شیعه مد نظر را ببینید. بنگرید اکنون در کجا قرار دارد. منتظر بمانید تا ذهن شما تصویری واضح با جزئیات به شما بدهد. تصاویر مبهم و زودگذر معمولا ناشی از تمایل به موفق شدن در تمرین یا باستاب حدث های قبلی و مکانهایی هستند که قبلن به آنها نگاه کرده اید. اگر تصویر بسری واضحی دریافت نکردید، بخواهید در اسره وقت آن شیع را پیدا کنید. درخواست کنید که به شما بازگردانده شود زیرا به آن نیاز دارید. این تمرین به نتایج شایان توجهی منچر می شود. مردم یا شیعه گم شده را کاملا واضح می یا در مدت زمان بسیار کوتاهی به یافتن آن هدایت می شوند. تمرین شماره 2، مشاهده از راه دور شهود همچنین شامل درک جهان به است که با محدودیت های حواس پنجگانه غیر ممکن به نظر می رسد. برای اینکه اطمینان داشته باشید چنین درکی دارید؟ یک همراهی پیدا کنید که با او این تمرین را انجام دهید. دو همانطور که خودتان آرام در یک اتاق نشسته اید از همراه خود بخواهید به اتاق بعدی برود که در آن مجموعه ای از کتاب های مصور یا مجلات قرار داده اید. 3. به همراه خود بگویید که تصادفی یکی از کتاب ها را باز کند و برای لحظه ای به هر تصویر خیره شود. 4. همانطور که همراه شما تصویر را مشاهده می کند آن را در ذهن خود ببینید. پنج، به خود فشار نیاورید، اجازه دهید هر تصویری که می در سراسر ذهنتان ظاهر شود. شش، چه تصویری کاملا واضح باشد یا نه، وقتی هر دو به یک اتاق بازگشتید، آنچه را که دیدید برای همراه خود توصیف کنید. راز موفقیت در اینجا تفسیر کردن نیست، تصاویر در هیته شهود معمولاً در ابتدا کم رنگ هستند. بنابراین نکات مبهمی از تصویر دریافت خواهید کرد. یک کوه ممکن است مانند خط منهنی در برابر آسمان یا شکل نکتیز مانند کلاه جادوگر به نظر برسد. شاید فقط یک رنگ را در ذهن خود ببینید. ذهن شما ممکن است این شاخصهای مبهم را تفسیر کند و تصویر اشتباهی ارائه دهد. با این حال مطمئن باشید که سیگنال واقعی ارسال و دریافت خواهد شد. تمرین را سه یا چهار بار تکرار کنید. با همراه خود جا به جا شوید و به جای گیرنده فرستنده شوید. اگر در چارچوب ذهنی آرام کار کنید و بدانید که تصویر مشاهده می شود از دقت روبه رشد خود شگفصده خواهید شد. تمرین شماره سه بخواهید و دریافت خواهید کرد شهود پاسخهایی می آورد که معمولا در دسترس ما نیستند وقتی تمام تلاش خود را برای حل مشکل انجام داده اید و با این حال راه حل خود را نشان نمی دهد شکست نخورده اید برای عبور از مانه آماده شده اید گشایش یا عبور از مانه جهشی از عقل به شهود است. چه از طریق رویاها چه جرقه های بینش و چه از طریق درک ناگهانی حقیقت. اینجا قانون آگاهی در کار است. بخواهید و دریافت خواهید کرد. مشکل یا چالشی را که در حال حاضر با آن روبرو هستید و هنوز راه حلی برای آن ندارید در نظر بگیرید. می تواند هر چیزی در محل کار یا زندگی خصوصی شما باشد. امشب قبل از رفتن به رخت خواب این کارها را انجام دهید. 1 زمانی را پیدا کنید که حوشیار و سرحال باشید. با چشمان بسته بنشینید و ذهن خود را با توقف گفتگوی درونی آن آرام کنید. دو تا جایی که می توانید مشکل را به وضوح برای خود بیان کنید. 3. آنچه را انتظار دارید اتفاق بیفتد برای خود بازگو کنید. اکنون آگاهانه انتظارات خود را به کائنات بازگردانید. پذیرای هر اتفاقی باشید، نه آنچه را که انتظار دارید. چهار از خود بپرسید که آیا اطلاعات کافی را برای حل مشکل جمع‌آوری کرده اید؟ اگر افراد دیگری نیز در این امر دخیل هستند، آیا نظر آنها را دریافت کرده اید؟ اگر موضوع چندین عامل خارجی داشته باشد، آیا آنها را به طور کامل درک می کنید؟ اگر اینطور نیست، قبل از ادامه دادن اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنید. 5 همانطور که راه حل مشکل را طلب می کنید، آن را به کائنات بازگردانید و رها کنید. به نتیجه فکر نکنید. 6. انتظار دریافت پاسخ را از هر جهتی داشته باشید. هر گونه دلبستگی به یک نتیجه خاص را رها کنید. هفت وقتی به رخت خواب می روید، انتظار داشته باشید که پاسخ هنگام خواب به شما داده شود. 8. وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شدید، از رخت خواب بلند نشوید. چشمان خود را باز نکنید، به درون بروید و پاسخ را جستجو کنید. به هر چیزی که دریافت می کنید به آرامی گوش کنید. تصاویر در همو گیج کننده یا جزئی و نیمه کار را حصف کنید. منتظر پاسخی باشید که واضح، ساده، قطعی و رضایت بخش باشد. وقتی پاسخ خود را دریافت کردید به آن عمل کنید نو no. اگر راه حل خود را دریافت نکردید صبور باشید به کارهای روزمره خود بپردازید. شهود همیشه یک روزه به شما پاسخ نمی دهد در غیر منتظر ترین لحظات برای یک جرقه بینش آماده باشید در ابتدای این تمرین ممکن است احساس ناآشنایی داشته باشید اما اگر به اندازه کافی آن را تمرین کنید قدرت در خور توجهی دارد اصل بخواهید و دریافت خواهید کرد بر آگاهی در ژرفترین و واضح ترین سطح آن اصفار است و منجر به اکتشافات و بینش های بسیاری شده است که همه بر اساس اعتماد به شهود و پرورش آن است با اعتماد به هوش متعال راه را برای ارتباط با آن می گشایید در نهایت راز شهود اصلا یک راز نیست بلکه فرایند عادی برقراری ارتباط با هوش متعالی است که در پس هر موقعیتی حضور دارد